ریچل یک شنبه 18 آگست 2013 صبح واقعا درست نمیدونم باید چیکار کنم. فقط یه راز زنگ در رو میزنم. موندم که اول باید تلفن میزدم. معدبانه نیست که صبح اول وقت روز یکشنبه بدون تماس قبلی سرگلم پیدا بشه. نفس نفس میزنم. یکی هم انگار عصبی هم. واقعا نمیدونم چه کار باید بکنم. هیچکس کس نمید پشته درد. سرش این وقتی بیشتر میشه که دور میزنم تا از در باغ برم سمت خونه. حس قوی آشنایی میاد سراغم. اون روز صبح وقتی اومدم خونه، وقتی دختر کوچولوشو برداشتم، اصلا نمیخواستم بلای سرش بیارم. الان دیگه مطمئنم. در حالی که توی سایه سرد خونه از راهباریگه ورودی میرم سمت خونه، میتونم صدای پچپچه حرف زدنشون رو بشنوم و حیرونم که این صدا تو سرم و دارم خیال میکنم. صدای حرف زدنشون رو میشنم یا واقعا کسی داره حرف میزنه. اما نه. اون زن اینجاست. آنا. نشسته تو ایوون صداش میزنم و از نرده میرم بالا. اون به هم نگاه میکنه. انتظار دارم شوکه بشه یا عصبانی اما حتی انگار تعجبم نکرده. سلام ریچل. بله میشه. بچه رو بغل میکنه و تکونش میده. به هم نگاه میکنه. بدون لبخند. آروم. ماش قیرمرزه رنگش پریده انگار پوست صورتش رو کیسه کشیده آرهش نکرده میپرسه؟ چی میخوای من زنگ در رو زدم نشنیدم بچه رو میذاره رو کپلش نصف بدنش رو به من معییس انگار میخواد بره تو خونه اما بعدش میخکوب میشه نمیفهمم چرا سرم داد نمیکشه تام کجاست آنها؟ رفته بیرون بچه های نظامی دوره هم دیگه جمع شده میگم ما باید بریم آنها اینو میگم و میزنم زیر خنده